ملاساله بعد از صحبت با و سلطنه و بازگشته به قزوین چند بار به خانه سکینه خانم سر زد و هر بار با در بسته مواجه شد بار چهارم افسار خرش را به که پای در کوتاه و چوبی خانه بود بست و خودش روی سکوی کنار در ساعتها به انتظار نشست ولی هیچکس کس نه به این منزل آمد نه از این منزل شد به دلیل توصیه معکد منظ سلانه به پنهانکاری، پرست از در و همسایه را سراح کار نمیدید. خانه سکین خانم پشت گرده بازار بود در محله سر کوچه ریخان و هر دفعه که مله صلحبان جا میآمد، جاده دروازی ری را رو به دروازه گوسفند می گرفت، از بازار علاف ها و آهنگرها و تارها میگذشت تا به چهار سو بزرگ میرسید. از میان بازار بزازها سر خر را به طرف چهارسو کوچه کج می کرد، از کنار زنان بازار میانداخت و به طرف خانه سکین خانم می رفت. کوچه معبر نبود، فقط چند پسر بچه در کمرکشان نشسته بودند و قاب می ریختند. ملا تا آفتاب پران لبه بام روی سکو نشست. خماری تریاک به خمیازه و دهندره اشوا داشت و آب از چک و چانش راه افتاد. از پر شالش ایک قوتی حلوی بیرون کشید و یک ماش تریاک زیر زبان گذاشت و نگاهی به گل میخای برنجی در انداخت که زنگار قدمت گرفته بود و از بالا تا پایین در به چوب پرچ شده بود. وقتی آب تریاک از گرویش پایین رفت آب دماغ را با گوشه عبایش که بوی پرک میداد گرفت و رو به جمع پسرها گفت آی بالام هی بالام جان. پسرها سر روی استخانهای بازی بلند کردند و یکی از آنها همانطور که سر پنجه نشسته بود گفت چیز از ملا ملا ساله گفت با این خانه کار داشتم تو میدانی اهل خانه جان؟ پسر نگاهی سرسری به در منزل سکین خانم من انداخت و گفت نه نم دانم حالا چی کارشون داری تو؟ ملا ساله گفت اون دیگه به تو است ایه میدانی کجان؟ جان بکن بگو ایه نه چندو چونت است یکی دیگر از پسرها که نوبت قاب ریختنش بود و میخواست چه زودتر به کارش برسد گفت ما مایل معلن نیستیم آ دو از دوکاندارهای تیمچه بپرسید ا نها لابد است و پسرها بازی از سر گرفتند مولا صالح با لند لند افزار خر را از میخ باز کرد و گفت خراب شد خانهای که هفته به هفته سوت کور است و سوار خرش شد و به طرف تیمچه وزیر راه افتاد تمام راه سر ملاساله زیر بار امامه گندش که از شکتابی به خاکستری میزد و خماری بیدودی که یک ماش تریا علاجش نبود روی سینه خفته بود و پاهایش در نعلینهای های نکبر با حرکت اولاغ لبر لبر میزد. در این چند هفتهی که از گفتگویش با آمون از ده میگذشت از فکر ماجرا در نمی آمد. نمیفهمید که چه نقشه ای در کار است و چه کاسه ای زیر نیم کاسه کوششی نکرده بود که از خود منزو سلطنه تاوتوی غذیه را در بیاورد چون منزو سلطنه در صرف کلمه به اندازه خرج پول خسیص بود و کنجکاوی فقط ممکن بود که او را از خیر سپردن کار به دست ملاساله منصرف کند و سراغ کس دیگری برود ملا صالح در خطیر بودن امر شک نداشت، وگرنه من از کسی نبود که به این آسانی ها خلعت و خز ببخشد. از آن امام زاده چنین معجزی نمی آمد. در باره سکین خانم ملا صالح اطلاع چندانی نداشت، در دوره که زن میرزا حسن خان برادر میرزا محسن خان بود، ملا صالح گاه به خانهش می رفت و در بیرونی پای منقل پسرهایی که او از شوهر اول داشت می نشست و یک دل سیر تریاک می کشید. اما خود سکینه خانم را هرگز رویت نکرده بود و از وجود دخترش به کلی بیخبر بود و حالا دو سالی می شد که پسرهای سکینه خانم را هم به چشم ندیده بود زندگی با همه مشکلات مگر فرصت گفت و شنود می گذاشت را باید صرف کسانی کرد که آبی از آنها گرم شود چه خاصیتی داشت این دختر سکین خانم که منزه و خواهانش بود و ملا ساله از آن آگاه نبود چه شده بود که منزه و با آن خربار فیس و افاده که با شاه فالوده نمی خورد و, کس و کار بلایتی را به چشم رعیت و زیر دست نگاه می و هرگز خالی از ایشان نمی پرسید؟ حالا سراغشان را میگرفت. و به صرافت عروس بردن از آنها افتاده بود آن هم با این همه بیم و امید و رمز و راز و وزل و بخشش وقتی سیغه نایب عبدالله تاغه زری و جانماز ترمه را از طرف منظور سلطنه به دست سپرد پرد به سکین خانم بدهد ملا صالح سعی کرد زیر زبان او را بکشد شاید از ماجرا سر در بیاورد ولی زن عبدالله خان از همه جا بی خبر بود و هرچی ملا صالح پرسید خوب زن نایب چه خبر است که شقوم تیرانی زن نایب سکوت کرد و بعد از اصرار و ابرام ملا صالح فقط گفت فلان نم دانم چه بگم چه دانم چه بگم ملا صالح پرسید نم یا چه دانی این دوتا چیز هست ببه زن عبدالله خان باز تکرا کرد فلان نم دانم چه, دانم؟ چه, دانم؟ چه بگم ملا سالگ و تا آرد گرفتن چون دانم والا؟ بلاخره ملا از کوره به در رفت و گفت ای زن نایب تی دانم ما چخر بودی از دهات دار و سلطنه غزین. من سیغه جاری کردم شدی متعلقه عبدالله خان و رفتی تیران گفتیم بلکم لابد از تو دارالحکومه آدم شی حالا برگشتی ما یه دانم ما چخر که سهل است. به قمر بنی هاشم یه طویل آخر وقتی زن نایب عبدالله سرزا رفت ملا صالح برایش قرآن فاطه خواند و به خواهر نایب عبدالله که خط را گذاشته بود گفت مدانستم رفتنی است. همون از را که رسید با اون دل دل شکم چشاش گل تاق بود گفتم ای زبان بسته ای باشد شبه به روز برسانت است نه خیرا رفتنی بود آی بله رفتنی بود نالله و مزد و ولیمش را که سکی پول و کاسه آش و بادهی چلو بود جمع کرد و رفت کاروانسرای وزیر زیر نور پریدرنگ غروب قروب خواب زده به نظر می آمد. در صحن کاروانسرا چند سالدات روس به قشقش می خندیدند و بلند بلند حرف میزدند و خرامان خرامان جولان میدادند چند رعیت گردالود در یک گوشه نشسته بودند و دستمال نان و پنیر و انگور را در میان گرفته بودند و لغمه میزدند. یکی دو نفری هم جلوی دالان کارفانسرا پاها را در شکم برده بودند و گیوه ها را زیر سر گذاشته بودند و نفیر خورناسشان به هوا بود در دکانهای کنار دالان تخته بود، روی شیشه پنجره‌ی قرسی حجه های دور تا دورستان را قبار گرفته بود و رنگهای زنده قرمز اناری و زرد قناری و آبی شنگرفی و سبز زمرو و ها در این قروب غمنگیز مرده به نظر می رسید سخف مغرنس ایوان بر کاشیکاری های دیوار سایه انداخته بود، نه سیمرغ دیده میشد نشیر، نه شیر، نه ملائک، نه خوشید خانم، نه سوارکار نه شکار، فقط جسته و گریخته، نه پرک و ترنج و پاهوی خاشیها قابل تشخیص بود. ملا سالش جلوی اولین دکان تیمچه از خرش پیاده شد و به دکان رفت. مرد میانسالی با ریش توپی فلفلنمکی و سر تراشیده پشت ترازو نشسته بود، و دانه‌های چوبی چورتک را پر سر و صدا با شست و انگشت اشاره بالا و پایین می‌برد چشمش که به ملا صالح افتاد گفت خیر است انشاءالله ملا صالح و دست از این برا آفتاب از دام سمت در آمده است ملا صالح چشم‌های تراخومیش را به طرف چراغ گردسوز گرداند و پلک زد و با سر آستین عبا دماغش را خاراند و گفت سلامت باشی مرتغی می مشودم گفتم یه حالی از شما بپرسم خوبی ان ابوی خوب است اخوی خوب است خب شکر خدا مشتقی گفت برنج دمسیای اعلی از رشت رسیده است مولا صالح ری می‌کند ای و دو بند انگشتش را نشان داد مولا صالح گفت 16 انریزاده خانی گونی مهدی خانی مرحمت کرده است که از دمسیای های هم بهتر است والا. مشتقی میدانست که ملا ساله تمام مایه تاجش را از اعیان و اشراف شهر خیرات میگیرد و خریدار چیزی نیست مگر تریاک آن هم به نسیه ولی مشتقی برای اینکه سر به سر ملاصالح بگذارد و زودتر از دکان فرارش بدهد همیشه گرانترین اجناس را به او عرضه میگرد. گفت روغن کرمان شای و زعفران خراسانم دارم ای خوش از این سوزن های حسنخانی حسخواانی هم خوال ملا ساله پستید سوزن حاجمیر حسنخانی حسخواانید چیز است؟ مشتقی گفت تگوش ها هااد استیه؟ کنی سوزن کل جواب دوست بگو نه که بلند کنی سوزن صاب دهان و دهن را گوش تا گوش به لبخندی معنیدار گشود ملا صالح چشمش به سینی خورمای روی پیشخواان بود و پسید نظری است؟ مشتقی سینی را به دور از دست ملا سر سرداد و گفت مه خورما خرک است نه خیرا این روتب است به مثال ظالوم ماند اغزش رهد دارد و مچسبد هر یه دانه خورما یه چلچرا مگد نظری است چش نظری است ملا سالح و ناخون خوش، بی برکتی والا من آدم یه خورده حلوه ارده ببرم، پستش زیاد باشد مشتقی یک تخته نازوک حلوه ارده مغز ای برید و روی یک تکه کاغذ توی ترازو گذاشت و سنگها را و درشت کرد و گفت یه سیر و نیم شد خوب است؟ خوب است بالام یه تیکم نام بده همینجا بخورم که درم از گسنگی مالش مرد از زور بیلانم از این پسرهای سکین خانم چه خبر؟ پیداشان نیست مشتقی حلوا ارده را با نصف نان لواش روی پیشخوان جلو ملا صالح گذاشت و گفت حالا چند وقت اس پیداشون نیست؟ بله نهخیرا چند وقت اس ملا صالح یک دیکه نان لواش را با پنج انگشت دست گرفت و از حلوا قاطق برداشت و لغمه را کامل در دهان گذاشت در هین جویدن گفت اجب اس مشتقی موقعیت را سبک سنگین کرد که ببیند کدام به صلاح و صرف نزدیکتر است، اطلاع بیشتر به ملا صالح دادن یا زبان در کام کشیدن، و بالاخره به این نتیجه رسید که با گفتن محتمل است ملا صالح شرش را زود ترکم کند و او بتواند به حساب و کتابش برسد، وگرنه تا بوق سگ گرفتار خواهد بود و نخواهد توانست در دکان را به این زودی ها تخته کند. و گفت حالا چند وقت از بل پارسال بود پیش از برداشت زراعت که همهشان رفتن برا رودبار ملا صالح با نان را و تهمانده ارده در پنجه پیچید و باز گفت عجبه است رودبار رفتن شکن مشتقی چرتکه را که موقتا کنار گذاشته بود روی پیشان گذاشت و گفت خو خانه قذبی خالی کردن به این حساب که فرمان فرمان آنجا بماند، ایطور که آقا میرز عبدالباقی میگرد، شازده خو حاکم آذربایجان شدست اما را به ایالت ندارد، میگن اردبیل ملا قربان علی قروخ است با مستبده هم و رحیم خان چلبیانلو خاک آنجا را به توبره است تبریزم شلوخ شلوخ شازده اینجا ماندگار شده است اما هنو در خانه سکین خانم ساکن نشده است خانه خالی افتاده است تا شازده نزول اجلال کند خلاف از نکرده باشم اینطور که آمجدو عبدالباقی مگد اهل خانه رفتن برا رودبار به تا بلکم درخت های زیتون ها نخل کنن. زبان ملا مشغول گشتن در سوراخ صنبه و زیر و زبر دهان بود که آخرین ذرات نان و حلوا را جمع و جور کند و فرو ببرد با آنکه تا آنجا که ممکن بود ها را با دندانهای جلو جویده بود و قسمتی را نجوید بلعیده بود زغزغ دندان‌های کرم خوردهش بر اثر تماس با بلند شد و ملا صالح در هین جستجو با زبان درد دندان را با موج کشیدن بزاغش تسکین می و در ضمن حواسش به حرفهای مشتقی بود و بالاخره گفت خو خو پس رفتم برا رودبار خو پسرا با همشیره و ننه و همه مشتقی گفت آی بله ایطور که معلوم است. ملا ساله پرسید چند وقته مشتقی گفت خدا دانا فعلا که خبری از نیست ملا صالح میدانست که با یک سیرو نیم حلوا بیش از این از مشتقی نمیتواند اطلاعی کسب کند از پر شال قوطی حلبی و کیسه پولش را بیرون کشید و یک ماش دیگر تریاک در دهان انداخت و به مشتقی گفت اندانم دارد می کند والا دواش همین است و شروع به شمردن پول‌های سیاهش کرد که قیمت حلوا ارده را بپردازد مشتقی که با چشم سکه ها را دانه دانه دنبال می‌کرد به ملاساله صالح گفت برو سر وقت دکتر بید و ارست و از بند بکشد خلاصی چیز اسی چارتا استخانه کرمو ملا با سوار خرش شد و براه افتاد شهر و جاده از زمان کودکی او تغییرات عمده کرده بود وقتی یک گلف بچه بود بیل بردوش همراه پدرش که میراب به قناط و بود برای رساندن آب به دیوان خانه و دار و شفا و حمام حاج میر کریم و کاربان سرای وزیر میرفت و روزهای معین به محلات دربری و بلاقی و تندور سازان و گذر بایندر آب بیبست. در همین آمد و شدها پایش به خانه صدر اسلام باز شده بود و حجر نشینی و طلبگی پیش کرده بود و معمم از آب در آمده بود. حالا دیگر قنات خشک بود و بسیاری از این محله ها دیگر وجود نداشت، مال وقف این و آن شکر هنوز بود که او بگردد و بخورد، اما از ملک و ده و باغی که ملاهای دیگر در طرفداری از استبداد یا جانبداری از مشروطه صاحب شده بودند، ملا صالح نصیبی نبرده بود، از آخوندهای دیگر و تنی چیزی کم و کسر نداشت، شرح لمعه بود، متول خانی و سر منبر هم می توانست آب چشم از مؤمنین و مؤمنات بگیرد، یک جو اقبال میخواست تا مثل آخوند ملا محمد اسماعیل نسلن بعد نسل و بتنن بعد بتن متولی اموال مغوفه آدمی چون اشرف الهاجیه بشود، تا نانش تا آخر عمر در روغن باشد، و قم فردای کور و کچلهایش را نخورد. هی بخت موشور صالح ذهنش را متوجه حرفهای مشتقی کرد و به این نتیجه رسید که باید در طلوع آفتاب به تلگراف خانه برود و خبر به منظر سلطنه برساند که کارش دیر و زود دارد اما سوخت و سوز اصلا و عبدا و اب آخر هفته آزم رودبار و دیدار با سکین خانم بشود و کار را هرچ زود ترفی بدهد و خلعت را تا از سلطنه از حرفش عدود نکرده است بگیرد. وقتی ملا صالح به سبز میدان رسید هوا کاملا تاریک بود و سکهای بی و بی در دور و اطراف میدان ولو بودند یکی از سکها پارس بلندی به ملا صالح کرد و چند قدمی به دنبال خرش دوید رشته چرت و فکر ملا بریده شد و گفت ای زکوم ای ماشدرهای خف خفقان گرفته چه وقت مزند سگ پدر حرام زده رد چوچه اینجا سر بندان سگ ام سبز میدان چیز است سگ میدان است اینجا والله